تاله اگر مدد دهد دامن شاورم بکف گر بکشم زهی طرف ور بکشد زهی شرف تاله اگر مدد دهد دامن شاورم بکف گر بکشم زهی طرف ور بکشد زهی شرف طرف کرم کرمز کس نبستین دل پر امید من گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف از خم عبروی تو هم هیچ گشایشی نشد و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف عبروی دوست کی شود دست کش خیال من کس نزد است از این کمان تیر مراد بر هدف چند به ناز پدورم مهربتان سنگ دل یاد پدر نمی این پسران ناخلف من به خیال زاهدی گوش نشین و طرف آنک مقبچه ایز هر طرف می زندم به چنگ و دف بیخبر اند زاهدان نخش به خان و لا تقول مست ریاس مقتصب واده بده و لا تخب صوفی شهر بین که چون لغمه شبهه می پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان بسید بدرقه رهت شود هممت شهنه نجفت